اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی له الملك وله الحمد و هو على كل شیء قدیر بنام خداوند بخشنده بخشایشگر آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند. مالکیت و حکومت از آن اوست و ستایش از آن او و او بر همه چیز توان است. هواللّذي خَلَقَكُمْ ثَمَنَكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ او کسی است که شما را آفرید و به شما آزادی و اختیار داد گروهی از شما کافرید و گروهی مؤمن و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم و زمین را به حق آفرید و شما را در عالم جنین تصویر کرد تصویری زیبا و دلپذیر و سرانجام همه به سوی اوست يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور کرا در آسمان ها و زمین است میداند و از آنچه پنهان یا آشکار میکنید با خبر است و خداوند از آنچه در درون سینه هاست آگاه است من <تصفيق> آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ آری، آنها؟ تعم كیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند و عذاب دردناک برای آنهاست ذلك بأنه كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید این به خاطر آن است که رسولان آنها با دلایل روشن به سراغشان می آمدند ولی آنها از روی کبر و قرور گفتند آیا بشرهایی مثل ما میخواهند ما را هدایت کنند از این رو کافر شدند و روی برگرداندند و خداوند از ایمان و تاعتشان بینیاز بود و خدا غنی؟ و شایسته ستایش است. از عمل الذين كفروا ان ينبعثوا قل بلا وربي لا تبعث نس من لتب ن بما عملتم وذلك على الله يسير. کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو آری پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت برانگیخته خواهید شد سپس آنچه را عمل می کردید به شما خبر داده می و این برای خداوند آسان است فآمنوا بالله و رسوله و النور الَّذِي أَنْزَلَّا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير حال که چنین است به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده این ایمان بیاورید و بدانید خدا به آنچه انجام می آگاه است یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم التغاب و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات و یدخله جنت تجری من تحتها الانهار خالدین فیها خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم این در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع روز رستاخیز گردآوری می کند آن روز روز تقابن است روز احساس خسارت و پشیمانی و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را میبخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاریست وارد میکند. کند، در آن می و این پیروزی بزرگ است، وَالَّذِينَ كفروا وكذبوا بِ آیَاتِنَا اصحاب النار النَّارِ اولَئِكَ عَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وبئس المصير اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند جاودانه در آن میمانند بسر انجام بدی است ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن یؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علیم هیچ مصیبتی رخ نمیدهد مگر به اذن خدا و هر کس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت میکند و خدا به هر چیز داناست و الله کنید خدا و فان تولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبين اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را و اگر رویگردان شوید رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون خداوند كسیاست كه هیچ معبودی جز او نیست و مؤمنان باید فقط بر او توكل کنند يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدو وان فان الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید خدا شما را میبخشد را که خداوند بخشنده و مهربان است. انما فتنه والله عنده عظیم اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست. فاتقوا اللهم استطعتم و اسمعو و اطیعو و انفقو خیرا لی انفسکم و من یوقشح نفسی المفلحون پس تا می توانید الهی پیش کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است و کسانی که از بخلو و حرص خيشتن مسون بمانند رستگارانند این تو الله قرض حسن یضاعف لكم ویغفر لكم والله شکور حلیم اگر به خدا قرض الحسن دهید آن را برای شما مضاعف می‌سازد و شما را می‌بخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است علم الغیب و شهادت العزیز الحکیم او دانای پنهان و آشکار است و او عزیز و حکیم است